مردها رفتند و با یک چک کش و یک جعب میخ به اتاق برگشتند اما میخی به تابوت نکوبیدند وسایل را روی میز گذاشتند و روی تختخوابی که مرده قبلا در آن بود نشستند پدر بزرگم آرام به نظر میآمد اما آرامشش ناقص و نومیدانه است با آرامش جنازه توی تابوت فرق دارد آرامش مرد ناشکی با و بیقراری است که تلاش می‌کند احساسش را نشان ندهد. پدربزرگ آرامشی دارد که سرکش و نگران است. در طول اتاق بالا و پایین می‌رود، میلنگد اشیاء به هم ریخته را مرتب می‌کند. وقتی متوجه میشم که اتاق پر از مگس است، از فکر اینکه تابوت پر از مگس شده عذاب میکشم. هنوز تابوت را میخ نزدند. اما به نظرم میآید وزوزی که ابتدا فکر میکردم از پنکه یه برقی خانه ی همسایه بلند میشود از حجوم مگس است که کورکوران خود را به کنارهای تابوت و چهره مرده میکوبند سرم راتکان میدم چشمهایم را میبندم میبینم که به در صندوقی را باز میکند و چیزهایی را برمیدارد که نمیتوانم تشخیص بدم چه هستند روی تخت خواب چهار تا آتش سیگار می بینم اما کسانی را که سیگار روشن کردن نمی بینم. گرفتار در گرمای خفه کننده و دقیقی که نمی و گرفتار در وزوز مگس احساس می کنم انگار کسی به من می گوید تو هم همین جور می شوی. در اون تابوتی پر از مگس خواهی بود. هنوز کمی به یازده سالت مانده اما روزی همین جور می شوی. توی جعبه ای در بسته گیر مگس ها و من پاهایم را کنار هم دراز می کنم و به پوتینهای سیاه و بر هم خیره می شوم فکر می کنم بنده که از پوتینهایم باز شده و باز به مامان نگاه می کنم. او هم به من نگاه می کند و خم می شود بند پوتینم را ببندد. بخاری از سر مادر بلند می شود که گرم است و بوی گنجه می دهد بوی چوب تخت خواب و مرا به یاد تابوت در بسته می اندازد نفس کشیدن برایم سخت می شود می خواهم از اینجا فرار کنم می خواهم در هوای سوزان خیابان نفس بکشم و به آخرین چاره متوصل می شوم وقتی مامان بلند می شود آهسته به او می گویم مامان لبخند میزند و میگوید ها و من لرزان به طرفش به طرف چهره سرد و براغش خم میشم مثل اینکه شاش دارم مامان پدر را صدا میکند و چیزی به او میگوید وقتی پدر بزرگ نزدیک میشود از پشت عینکش چشمان باریک و بی حرکتش را میبینم میگوید الان غیر ممکن است راست مینشینم و بی به شکستی که خوردم خاموش می منه. اما باز همه چیز بسیار کند و آرام میگذرد. پشت سر هم دل پیچه می گیرم. آن وقت مامان سرش را رو روی شانه هایم خم میکند و میگوید: «هنوز داری؟ با لحنی جدی و محکم حرف میزند. گویی بیشتر قصد سرزنش دارد تا پرسش. شکمم حالتی و قبض به خود گرفته اما سؤال مامان آن را نرم می کند و دردش را تسکین می دهد و بعد یک مرتبه همه چیز حتی جدی بودن مادر حالتی اعتراض آمیز و پرخاش گرانه به خود می گیرد به او می گویم آره هنوز دارم شکمم را فشار می دهم و سعی می کنم پایم را به کف اتاق بکوبم. آخرین چاره اما فقط فضای خالی را زیر پایم احساس می کنم که همان است که مرا از کف اتاق جدا می کند یک نفر وارد اتاق می شود یکی از آدمهای پدر بزرگ است و پلیسی پشت سرش می آید با مردی که شلوار سبز راه راه پوشیده ششلولی به کمر بندش بسته کلاهی با لبه پهن و برگشته در دست دارد پدربزرگ به استقبال او می رود. مردی که شلوار سبز راه راه پوشیده در تاریکی سرفه می کند. چیزی به پتر بزرگ می گوید باز سرفه می کند و با همان حالت سرفه به پلیس دستور می دهد پنجره را باز کند. دیوارهای چوب ظاهری لغزان دارند. به نظر می آید که از خاکستر سرد و فشرده ساخته شدند. وقتی پلیس با ته اصلهش به چفت پنجره می کوبد این احساس به من دست می دهد که کرکرها باز نخواهند شد خانه فرو خواهد ریخت دیوارها در هم خواهند شکست اما بی سر و صدا مثل قصری از خاکستر که در باد از هم بباشد احساس می کنم که با دومین ضربه با سرهای پوشیده از خردریز وسط خیابان زیر آفتاب خواهیم بود اما با دومین ضربه کرکره باز می شود و نور به درون اتاق میآید با خشونت به درون می ریزد درست مثل وقتی که دری را به روی جانور سرگردانی می گشاین که می دود و گیج و گنگ بو میکشد کشد خشم است و به در و دیوار پنجه می کشد کف به دهان می آورد و بعد برمیگردد تا در خونک ترین گوشه قفص به آرامی مچاله شود با باز شدن پنجره همه چیز در اتاق قابل رؤیت می شود اما آن حالت غیرواقعی، واقعی عجیب غریبشان باقی می ماند آن وقت مامان نفس عمیقی می کشد دستم را می گیرد و می گوید بیا بیا برویم از پنجره خانه خودمان را نگاه کنیم و من دوباره شهر را می بینم انگار پس از مسافرتی با آن بر می کردم. خانه خودمان را رنگ پریده و تو سری خوردم ما در خونکای درختان بادام میبینم. از این فاصله احساس میکنم انگار هرگز در آن خونکی سبز و سمیمی نبودم و انگار خانه ما همان خانه خالی است که مادرم شبها وقتی که خواب آشفته میدیدم به من وعده میداد و پپه را میبینم که غرق در افکار خود بیان که ما را ببیند رد میشود. پسر خانه بغلی سوت زنان می‌گذرد ریافش عوض شده و نه انگار نگار همین الان موهایش را کودا کرده است سپس شهردار از جا بلند می شود. پیراهنش باز و عرق کرده و حالتش کاملا منقلب است. با صدایی که بر اثر جر و بحث گرفته به طرفم میآید میگوید: تا بوی تعفنش بلند نشود نمیتوانیم مطمئن شویم که مرده. و بستن دگمه های پیراهنش را تمام می کند و سیگاریاتش میزند. باز هم رویش به طرف مرده است و شاید فکر می کند حالا دیگر نمیتوانند بگویند که مطابق قانون رفتار نکردم توی چشمانش خیره میشوم و حس می کنم به اندازه کافی جدی به او گریستم تا بهش بفهمانم که می توانم به زوایای افکارش نیز نفوذ کنم به او می گویم شما برای خوشایند دیگران برخلاف قانون رفتار می کنید و او انگار پاسخی را که دقیقا انتظار شنیدنش را داشته می دهد. شما مرد قابل احترامی هستید سرهنگ میدانید که من پا از گلیم خودم بیرون نگذاشتم. به او میگویم شما بهتر از هرکس میدانید که او مرده و او میگوید درست است اما هرچه باشد من فقط مستخدم دولت هستم تنها راه قانونی صدور گواهی مرگ است و من میگویم اگر قانون حامی شماست پس از آن استفاده کنید و دکتری بیاورید که بتواند گواهی مرگ را تنظیم کند و او که سرش را بی‌هیچ غروری با آرامش و بدون کمترین نشانی از ضعف یا آشفتگی بلند کرده میگوید شما آدم محترمی هستید و میدانید که این کار سوء استفاده از اختیارات خواهد بود وقتی این حرف را می متوجه می شوم که ترس و جبن بیشتر از شراب کودنش کرده است اکنون می بینم که شهردار هم در خشم مردم شهر شریک است این احساسی است که به ده سال پیش بر می گردد. آن شب طوفانی که آنها زخمی ها را در خانه این مرد آوردند و فریاد زدند زیرا او در را باز نمی کرد و از توی خانه حرف می زد. دکتر از این زخمیها مواظبت کن برای این دور این دوروبر به اندازه کافی دکتر پیدا نمی شود که به همه برسد و چون باز هم در را باز نکرد زیرا در بسته بود و زخمی ها را جلو در دراز کرده بودند به او گفتند تو تنها دکتری هستی که برای ما مانده باید عمل ثوابی انجام دهی و او هنوز هم در را باز نکرده بود که جمعیت تصور میکرد بسطه اتاق نشیمن است و چراغ را بالاتر گرفت است و چشمان زرد و سختش برق میزند جواب داد ترچه از این بابت میدانستم فراموش کردم آنها را جای دیگری ببرید و در همچنان بسته ماند زیرا از آن پس هرگز دوباره باز نشد و در همان حال خشم اوج گرفت و گسترش یافت و به بیماری یه جمعی بدل شد و تا پایان عمر دکتر مکندو از این همه خشم روی آرامش به خود ندید و آن شب در گوش همه این جمله تنین انداس شد همان ای که دکتر را به پوسیدن در میان این چهار دیواری محکوم کرد و انعکاس مداوم یافت ده سال آزگار دکتر لب به آب شهر نزد زیرا می ترسید که مباد آب شهر را مسموم کرده باشند غذایش سبزیجاتی بود که او و خدمتکار سرخ پوستش توی باغچه خانه می کاشتند. حالا همه شهر احساس می کنند که نوبت آنهاست که رحم و شفقتی را که دکتر ده سال پیش از مردم دریغ داشته بود از اون مزایقه کنند و ما کندو که می اون مرده زیرا هر کسی باید امروز صبح احساسی سبکتر از خواب بیدار شده باشد خود را برای لذت بردن از شادی که مدت ها آرزویش را داشته و هر کسی خود را لایق می داند آماده می کند. یگان آرزوی مردم استشمام بوی تجزیه اندام او پشت درهایی است که او در آن شب باز نکرد. اینک کم کم میتوانم باور کنم که با وجود در رنده تمام شهر، و دور شدن در میان نفرت و بیسبری انبوهی از مردم رنجیده و خشمگین هیچ چیز نمی تواند مرا در انجام قولم یاری کند حتی کلیسا هم برای مقابله با تصمیم من راه حلی پیدا کرده است پدر آن خل لحظه ای پیش به من گفت اجازه نخواهم داد در زمین مقدس مردی را دفن کنن که پس از جس سال زندگی بدون خدا خودش را دار زده شما هم اگر عملی را که جز گناه و سرکشی هیچ سبابی آن نیست انجام ندهید پروردگار ما رحمتش را شامل حالتان خواهد کرد من به او گفتم تطفین میت همانطور که در انجیل آمده سباب دارد پدر آنخل در جواب گفت بله اما در این مورد خاص ما چنین ای نداریم این وظیفه ای اداره بهداشت است من آمدم آن چهار گواخیرویی را که در خانه من بزرگ شدهاند صدا کردم دخترم ایزابل را وادار کردم همراه من بیاید به این ترتیب کار بیشتر جنبه خانوادگی و انسانی پیدا می‌کند و کمتر از موقعی که به تنهایی جنازه را بر دوش بکشم و از میان خیابانهای شهر به سوی گورستان ببرم حالت شخصی و مبارز تلبانه به خود میگیرد با آن همه حوادثی که در این قرن به چشم خودم دیدم فکر میکنم ما کندونیز قادر به انجام هر کاری باشد اما اگر آنها حتی به خاطر اینکه من پیرم و سرهنگ جمهوری هستم، و یا بالاتر از همه به خاطر ناتوانی جسمی و وجدان پاکم احترام مرا نگه ندارند، امیدوارم که دست کم به دخترم به خاطر زن بودنش احترام بگذارند. من این کار را به خاطر خودم نمی کنم، شاید به خاطر آرامش روح مرده هم نباشد، بلکه تنها برای به سامان بردن یک وعده مقدس چون این کاری می کنم. اگر ایزابل را همراه خودم آوردم از روی بزدلی نبود، برای سواب بود. ایزابل بچه چرا با خودش آورده. میدانم که اون نیز به همین دلیل این کار را کرده. و حالا ما اینجا هستیم. هر ستامان سنگینی بار این ضرورت ناگوار را به دوش میکشیم. ما لحظه ای پیش به اینجا رسیدیم. فکر می کردم با جسد آویخت از سقف روبرو میشویم، اما مردها زودتر از ما رسیدند او را روی تخت خواب دراز کردند و با اعتقادی درونی به اینکه کارها یک ساعت بیشتر طول نمی کشد تقریبا او را کفن پوش کردند وقتی میرسم انتظار دارم تابوت را بیاورند می بینم دخترم با بچهش این نشسته و اتاق را وارسی می کنم. به این خیال که شاید دکتر از خودش چیزی جا گذاشته باشد که علت دار زدنش را روشن کند. کشوی میزش باز است و پر از کاغذ و نامه‌های به هم ریخته که هیچ کدام به خط او نیست. روی میز همان سوگند نامه جلد شده ای را میبینم که او 25 سال پیش هنگامی که آن صندوق بسیار بزرگ را که می توانست همه لباس لباسهای خانواده مرا در خودش دهد باز کرد آن را به من نشان داد اما جزد و پیراهن ارزان قیمت و یک دست دندان مصنوعی یک عکس و یک سوگند نامه چیز دیگری در صندوق نبود دندان مصنوعی نمی توانست مال او باشد به این دلیل ساده که هنوز دندانهای خودش محکم و سالم بود کشوها را باز می کنم، و توی همهشان اوراق چاپی پیدا می کنم. فقط اوراق کهنه و گرد و خاک گرفته، و توی کشو پایینی همان دندانهای مصنوعی گرد و خاک گرفته ایستگو بیست سال پیش با خود آورد و حالا بر اثر گذشته زمان و عدم استفاده زرد شده است. روی میز کنار چراغ خاموش چندین بسته روزنامه باز نشده است، آنها را وارسی می کنم به زبان فرانسه آخرینشان مربوط به سه ماه پیش است، جویه 1928 و روزنامه های دیگری هم هست که لایشان باز نشده جانویه 1927 نوامر 1926 و اکتبر ترینشان اکتوبر 1919 فکر می کنم نه سال است که لای روزنامه را باز نکرده یعنی درست یک سال پس از آن که آن عبارت را به زبان آورد از آن موقع به بعد از آخرین چیزی که او را با سرزمین و مردمش پیوند می داده دست شست است مردها تابوت را میآورند و جنازه را در آن میگذارند. سپس آن روز را بیست و پنج سال پیش را به خاطر می آورم که او قدم به خانم گذاشت و توصیه نامه را به دستم داد که سرفرمانده ساحل اقیانوس اطلس در پایان جنگ بزرگ، سرهنگ آرلیان و بو آن را در پاناما و خطاب به من نوشته بود. در زوایای صندوق بیدر و پیکر لابلای خرت و پرتهای جور با جور کند میکنم. هیچ سر نخی نیست مگر همان چیزهایی که بیست و پنج سال پیش همراه داشت. یادم می آید، دوتا پیراهن ارزان قیمت داشت، یک دست دندان مصنوعی، یک عکس، و یک سوگند نامه ی کهنه صحافی شده. پیش از آن که مردها در تابوت را ببندند، برای جمع کردن این خرت و پرتها دست به کار می و آنها را توی تابوت میگذارم گذارم. عکس هنوز ته صندوق است، تقریبا همان جا که در آن زمان بود. داگر افسری است با نشان و مدال. آن را توی تابوت می اندازم، دندانهای مصنوعی و سرانجام، سوگند نامه را هم توی تابوت می اندازم. وقتی کارم تمام می شود به مردها اشاره می کنم که در تابوت را بگذارند. فکر می کنم اکنون او آزم سفر دیگری است. در این آخرین سفر، طبیعی چیز برای او همراه داشتن اشیایی است که در سفر قبلی با او بودند. حداقل از هر چیز دیگری طبیعی به نظر می رسد. آنگاه برای اولین بار می بینم که راحت مرده است اتاق را وارسی می کنم و می بینم که یک لنگه کفش روی تخت خواب جا مانده کفش به دست به آدم هایم اشاره می کنم و آنها سرپوش تابوت را دقیقا در لحظه ای که قطار سوت می کشد و در خم آخرین پیچ شهر ناپدید می شود بر می دارند. فکر می کنم ساعت دو سی دقیقه است دو سی دقیقه یه دوازده همه سپتمبر ۱۹۸ همان ساعت و روزی که در سال سه، این مرد برای اولین بار سر میز ما نشست و خواهش کرد به او کمی علف بدهیم بخورد آدلایدا در آن موقع از او پرسید چه نوع علفی دکتر؟ و او با آن صدای جویده جویده و خست بارش که هنوز هم تو دماغی بود گفت علف معمولی خانم از همان علفی که خر میخورد.